ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من ياده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونشهد عن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلّى الله عليه و آله و أصحابه، الله عليه و آله و أصحابه، وسلم تسليما و اما بعد فعوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عريص عليكم بالمؤمنين روف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سلك الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ شرح لِي صَدْرِي وَيَسْرْ لِي أَمْرِي بحلو العقدة من لسانی یفقه قولی سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنو صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم مولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم وكلهم من رسول الله ملتمسون وكلهم من رسو لله ملتمس غرفا مِنَ البحر أو رشفا من اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم بلغ العلى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميل خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على سيدنا أولانا محمد على آله وأصحابه وبارك وسلم الطاف خداوندی و نعمت های بیکران خداوند ذوالجلال بالاتر از حد و حساب و بیان بر انسانها ها بزرگترین نعمت نعمت ایمان نعمت قرآن نعمت نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفی و احمد مجتبا صلی الله علیه وسلم نعمت مال و نعمت چشم و گوش این فاین تر از اون نعمت هایی که خداوند به انسان نعمت هدایت نعمت توفیق طاعة و بندگی نعمت شکر نعمت سلامتی نعمت علم و دانش نعمت مال و اولاد اما بزرگترین نعمت که فلاح و رستگاری انسان هم در دنیا و در آخرت در آن قرار دارد نعمت ایمانه منهای نعمت ایمان نعمت قرآن نعمت نبوت بقیه نعمت ها هیچ ارزشی ندارند اگر ایمان نباشد اگر دین نباشد اگر مسلمانی نباشد اگر قرب خداوندی نباشد اگر نماز و روزه و احکام دین نباشند بگی نیمت ها هیچ بیعرزش خداونده ذو الجلال می فرماد وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَخْسُوهَا نعمت وجود و آفرینش نِعْمَةِ بِسَت خداوند ذو بر هیچ نعمتی از نعمتهای خودش بر بندگان مننت نمی گذارد منت منه که خدمت سلطان همی کنم منت از او شناست که به خدمت بداشته مننت خداوند زلجلال را ما بگیریم که ما را با نعمت ایمان مشرف کرده است این بزرگترین سرمایه در قرآن عظیم خداوند ذوالجلال منتی را که برای مسلمانها بیان می فرماید نعمت بیست آن حضرت صلی الله علیه و سلم لقد من الله على المؤمنین از بعث فیهم رسولا من انفسهم خداوند این همه نعمت را بر انسان عطا فرموده است اما بر کسی مننت نمیگذارد. ما اگر بر کسی یک لیوان آب دیم بر روخ او میکشیم. یک نان و نمکی بدیم بر روخ او میکشیم کشیم برایش یک کار جزی انجام بدهیم بر روخ آن شخص میکشیم کشیم که من فلان کردم برای تو اما خداوند جلال این همه هایی که به ما انایت فرموده که لا تعد و لا تحصا هستند بی حد و به حساب جز یک نعمت را بر انسان ها مننت می اون نعمت بیست رسول مکرم اسلام صلی الله عليه و سلام. این بزرگترین نعمتی بزرگترین سرمایه بزرگترین هستی برای انسان نجات انسان فلاح انسان سعادت انسان در گرو این نعمت خداوند زلجلال نعمت بیست اگر این پیمبر نمی وضعیت ما چی بود؟ وضعیت مردم مکه و تمام سرزمین قبل از بیست آن حضرت صلی الله عليه وسلم همش درندگی جهالت کوف و زنده در گور کردن دختران شمشیر کشیدن بر هم دیگر دنیای ظلمت و دنیای تاریکی ها بود اما و برکت نعمت بیست آن حضرت صلی الله علیه و خداوند ذوالجلال بر انسانها مهنت نهاد لقد من الله على المؤمنين ازبعث فيهم رسولا من انفسهم پیمبری که از خود شما انسانها پدرش مادرش جدش اجداد و آبا و امهات و مشخصه معلومه یک انسان من حضرت می که خداوند زلجلال مرا اختار کنانت من ولد اسماییل خداوند زلجلال از نسل کنانه حضرت اسمایل علیه السلام را برگزید. ثم مختار من کنان قریشا بعد از کنانه خدامند ذوالجلال قریش را انتخاب فرمود ثم مختار من قریش بنی هاشم باز آن حضرت صلی الله علیه وسلم از قریش قبیله بنی هاشم را برگزید انسانهای صاحب شرف، صاحب نصب هر یکی بر نصب خودش افتخار میکند. اما خداوند زلجلال این فیمبر را از تمام این جهانیان از نسل تمام این جهانیان از همه انبیا مقام و جایگاه ان حضرت صلی الله علیه و سلم را از همه بالاتر قرار داده است خلقت و آدم و بین الماء و الطین، او کما قال علیه الصلاة خداوند زلجلال روح مرا آفری زمانی که حضرت آدم هم یک خاک بود وجودی از آدم و از نوح و از حضرت ابراهیم و و انبیاء بنی اسرائیل و از حضرت موسی و حضرت عیسی از همه اینها خداوند الجلال روح مرا آفرید و نام مبارک ایشان در ستونهای عرش الرحمن با آب تلا تا ام با اسم خودش لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ستونه های عرش الرحمن نویشته بود حضرت آدم علیه صلی والسلام وقتی که بر اثر خوردن دانه گندم خداوند زلجلال نسرش را بر روی زمین فرستاد که مقدر همین بود از سرندی به هندوستان پا, پا با حضرت هوا تا میدان عرفات چقدر هزارها سال می گذرد وقتی که اینجا می رسد این دعا را می کند ای خداوند مرا به طفیل محمد رسول الله از این خطای من در بگذار خداوند جلال میفرماید که ای آدم تو از کجا اسم محمد را میشناسی صلی الله علیه و میفرمایند که من زمانی که در آسمان بودم در ستونهای عرش من دیدم که شخصیتی به دنیا میاد که اسم آن محمد است و نام آن مکتوب بود در آنجا این پیغمبر عظیم الشان رحمت للعالمین و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین انا سید ولد آدم ولا فخر لي روز قیامت همه پیامبران تحت لوای زیر لوا و پرچم من قرار دارند در روایات داریم که در میدان محشر انسانهای سراسیمه پریشان حال مضطرب می و میروند فز... نزد حضرت آدم علیه السلام سلام که ای آدم شما سفارشی بکن پیش رب العالمین تا خداوند ذوالجلال از این بلا تکلیفی ما را خارج بکند حضرت آدم علیه الصلاۃ و سلام می که من نمیتوانم نفسی نفسی آ شما بروید پیش حضرت ابراهیم خلیل همه سراسیمه پیش حضرت ابراهیم خلیل میروند اون هم در جواب میفرماید که نفسی نفسی من هم نمیتوانم شما برید پیش حضرت موسی و حضرت نوح و حضرت ایسا وقتی که پیش اونها میروند، اونها می گویند که نفسی نفسی بعض حضرت عیسی علیه السلام می فرماید که برید پیش محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم شاید خدامند زلجلال از این حالت بلا تکلیفی راه چاری بیابد و در حق این مخلوقات اولین و آخرین خدامند جلال. دفتر عدالتش را و قضاوتش را بگذارد و فیصله بکند در میان انسانها وقتی که همه جمع می شوند پیش فیانبر عظیم و شان ما در حالی که بر زبان مبارک ایشان به جای نفسی نفسی امتی امتی سر را به سجده می زارد. بر کتبهای های من دیدم که نوشته تا هب روز حمد و سنا و تمجید و عظمت خداوند زلجلال را بیان می فرماید خداوند زلجلال می فرماید که ای محمد تو چی می صلی الله علیه وسلم چشمهاش پر از عشق ریش و مبارکش تر از عشقه ها با گریه و زاری عرض می کند که رب العالمین تمام انبیاء دعاهای دعا دعا خودشان در حق امت را در دنیا کردند. و من دعای خودم را در حق امتن برای همچنین روزی گذاشتم بار ها در حق امت خودم شفاعت را میخواهم خداوند زلجلال می فرماد که ارفع راسک سرت را بلند بکن و سل توت و, و او كما قال و قال او کما السلام سر را بلند کن ای فیانبر من ای محبوب من و بخا هرچی می من امروز برای تو انعایت میکنم کنم و کن هر کسی را که تو می من شفاعت را در حق او مستجاب میکنم. بار مارا ما را پدران و مادران و خواهران و آبا و اجداد مسلمان ما را جز کسانی قرار بده که مستحق شفاعت نبی مکرم اسلامت باشند در روز قیامت خداوند جلال برای این پیغمبر چنین جایگاهی عنایت فرموده است لذا بیعت را بیعت پیغمبر را خداوند جلال بر این امت به عنوان یک مننت لقد من الله علی المؤمنین بندگان من برای شما مننت گذاشتم من خداوند جلال از باسه فیهم رسولا نه من در بین شما رسولی را آفریدم مبعوث کردم من انفسکم از خود شما یا من انفسکم از بهترین شما از تمام نسل بنی آدم من ایشان را برگزیدم از کنانه از قریش بعض از قریش بني هاشم بعد از همه بني هاشم من محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم را خداوان برگزیده است ازبعث فیهم رسولا من انفسهم یا من انفسهم لقد جاکم رسولم من انفسكم اونجا آمده است اونجا هم یک کرات هست که من انفسكم عزیز علیهما ما حریص علیکم بالمؤمنین الرؤوف الرحیم پیمبری که خداوند زلجلال را از خود شما حرسش در اینه که شما در سعادت و کامیابی باشید در رستگاری باشید. بر شما مؤمنان بسیار حریصه بر سعادت شما، بر نجات شما، بر سرات مستقیم بودن شما، بر راه استوار قرار گرفتن شما، در راه خدا، بر دین خدا، با اطاعت از قرآن خیلی تلاش میکند، خیلی وسوس داره، قراره که امت من، بر مستقیم باشند، بر دین ثابت قدم باشند. و بالمؤمنین رعوف الرحیم بر شما مؤمنان رعوف مهربان و رحیم بر شما مؤمنان ای مردم، اگر شما ایراز میکنید ای انسانها، ای مسلمانها اگر شما، از دستورات خداوند و نبی خداوند، از قرآن و سنت اگر شما ایراد بکنی ای فیانبر تو بر قوم خودت بگو که حسبی الله خداون برای من کافی است ای اهل مکه ای ابو جهل ای ابو لحب ای ولید بن مغیره اوتبه، شیبا، سنادید قرش انسانهای روی زمین بعد از من همه اینها اگر از تو ایراد بکنند روگردانی در دستورات خدامند زلجلال را کتاب آسمانی را قرآن را نادیده بگیرند میدانند که این کار حرامه اما انجام میدن میدانند که رشوت حرامه اما میگیرند. میدانند که دروغ حرامه. اما دروغ می میگویند. میدانند که گیبت حرامه. اما گیبت میکنند. میدانند که چشم چرانی حرامه. اما انجام میدهند. مال دیگران را خوردن خرامه، اما انجام میدن با وجودی که میدانند اینا همرا. ف فان replies اگر این قوم اطلاح بیکند، رو بگرداند از دستورات خداوند جلال، از آیات قرآن از سنت رسول الله از نماز میدانند که نماز فرضه اما نمی کنند نماز را کوتاهی می بستر نرم را خواب صبحگاهی را بر دستور خداوند زلجلال که نماز تحفه رسول الله تحفه میراج اما با کاهلی خودشان با سستی خودشان میبینی که مسجدها پکت پیر مرده هستند این ایراز روگردانی پشت دادن با دستورات خداوند زلجلال زکات را می که فرضه اما زکات مال را هم نمی دهند روزه را می دانند که فرضه اما روزه نمیگیرند، گیرند حج را می که فرضه اما انجامش نمی دهند په انتواللو دروز شریفی وانه حالا که ایلانی داته اشترایی که جماعوری کمک برای مدرسه جامعیت الحرمین شهر خود شما که آغاز سال تحصیلیش آغاز شده طلاب عزیز از هر جا و هر کجا آمدن درس می‌خوانند مشکلات مالی با توجه با تورم ها و گرانی های امروزه و مایحتاج این طلاب را که سی ست ست نفر را خرجی دادن امکانات رفاه را فراهم کردند، کار سختیه اما جز با همت شما مسلمان ها به این خاطر انشاءالله توی صفحا کارتهای کارتخانه ها آورده می شوند برای جمع آوری کمک. انشاءالله که عزیزانی که تا حالا حضور دارند آمادگی را داشته باشند و کمک خودشان را در راه خدا برای دین خدا و برای پرزندان خودشان انشاءالله آماده باشند. عزیزانی که برای این کار محول شدند کار خودشان را شروع بیکنند. درست شریف وانه. لذا خداوند زلجلال میفرماید که ای فیانبر شما نگران نباش اگر این قوم رو بگردانند از دینو و قرآن و فیامبر بقل حسبی الله خداوند مرا کفایت میکند لا اله الا هو گیر از او دیگه معبودی نیست یک تا و تنها ذات واحد الاحد همه چیز در قدرت او و در اختیار اوست. است ایچ کسی هیچ شخصی حتی فینبر هم نمیتوند به شما ضرور یه نقصانی برساند جز خداوند اگر تمام روی زمین انسان های روی زمین جمع بشوند و بخواهند بر تو زرری برسانند تا خداوند زلجلال نخواهد هرگز اون ضرر به تو نمی رسد. این ایمان ماه اکیده ای. هلمسلمانه که ما همواره بر این ایمان داشته باشیم آمنتو بالله و ملائکته و کتبی و رسوله و اليوم الاخر و القدر خیره و شره من الله تعالی و البعث بعد الموت این جزء اعتقادیات انسان به خدا ایمان بیاورد به ملائکه، به پیانبران، به روز آخرت، بر تقدیر و به بعث بعد الموت بعد از این زندگی پانی زندگی ای هست اون زندگی زندگی که لا موته اونجا موت دیگه نیست اونجا عبادت نیست اونجا تکلیف نیست تکالیف شرعیه اونجا نیست همش رفاه و ناز و نعمت و, و خوشی و شادی برای انسانهای مؤمن زجر کشیده که در, دن... در این دنیا با عبادت خدا، با تلاوت قرآن، با ذکر، با تسبیح، با توبه، با انابت ایر الله وقت خودش را، زندگی خودش را در رضای خدامند زلجلال گذرانده، اونجا برای اونها خدامند زلجلال میفرماید که الله خوفون علیکم ولا هم یحزنون نه ترسی هست، نه گمی هست، نه فریشانی هست ها؟ خندان خندان جز اصحاب الیمین که نامه آمال نیکان به دست راست داده می شود پا ها و مقره و کتابیه اونجا پامیلش را برادرش را پدرش را مادرش را دوستان را قومش را صدا می کند که ای مردم بیایید نام آمال مرا بخانید ها؟ اینی زنند و اینی ملاق حسابیه من دانستم که همچنین روزی میآید که نامه آمال به می رسد هرچی من انجام دادن امروز بیایید و ببینید که خداوند در حق من چه لطفی فرموده است اهل جنت وقتی که به جنت می یکی از اونها می گوید که ای اهل جنت من دوستی داشم در دنیا که من امروز او را نمیبینم بیایم ببینیم تو جهنم ایشان اونجایی یا نه همه می روند نگاه میکنند میگن می بله اون در قار جهنمه وسط جهنمه این انسان مومین میفرماید که کاش که من حرف تو را نگرفتم از تو فیروی نکردم اگر از تو پیروی کردم، جایگاه من همین جایگاهی بود که تو قرار داری این روز. اما، آنهایی که نامه آمال اونها به دست چف داده می شود، فی یا لیتنی لم اوت کتابیه ولم لم ادر ما حسابیه، ای کاش که من نامه آمالی داده نمی شده و من نمیدانستم که این حساب کتاب چیه من فقط این فکر را می‌کردند که فقط زندگی زندگی دنیای تو این دنیای حالا که خداوند جلال می‌فرماید که ومال مل حیات الدنيا الا متاع الغرور زندگی دنیا زندگی فریبه انسان را نفس و شیطان به هوا و هوس می‌کشانند به گمراهی و ضلالت میکشانند به فرتگاه جهنم او را وادار میکنند اما انسان مؤمن که از قرآن و از سنت فیانبر اطاعت کرده اون در خوشحالی و در خوشحالی خودش افتخار میکند ز خداوند زلجلال منت را بر مؤمنین میگذارد که فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته احکام خدا را آیات قرآن را بر او میخواند بر انسان ها این پیغمبر ما و یزکیهم و آنها را تزکیه کرده و یعلمهم الکتاب والحکمه با آنها کتاب را قرآن را به آنها تعلیم داده خداوند ذوالجلال علم را يك مقامي ويك جائقائي إن آيات فرموداز در روايتي هسكي أن حضرت صلى الله عليه وسلم يفرم آيات كن عالما أو متعلما أو سامعا أو محبا ولا تكن خامسا إنسانها يا خدتان آلين باشيد يا متعلم باشید شاگرد باشید علم را بخوانید اگر از این دو گروه نیستی خودت عالم نیستی خودت شاگرد و متعلم نیستی محب باش دوستدارنده علماء و طلاب باش سامع آیات قرآن و سنت رسول الله صلی الله عليه وسلم باش ولا تكن خامسا اما از گروه پنجم نباش اون موقع تو حلاک می نه خودت علم قرآن را میخوانی. نخودت نه خودت عالم هستی نه محب و دوستدار هستی نه سامه هستی شنونده هستی در مجلس واز و تبلیغ و بیان بی پرواب از کنار اونها رد میشید توی مجلس توی مسجد حلقه تبلیگ جماعت تبلیگ آمده بیان نصیحت وعظه تعلیم قرآنه اما در کنارش همینجوری رد میشوید توجه التفات نمی کنید خدا من زلجلال که از این گروه نباشید اون موقع شما هلاک میشوید هلاکت انسان در اینه که انسان خودش علم نداشته باشد خودش دنبال علم نرود خودش محب و دوستار اهل علم و طلبه نباشه خودش در خلقه های علم و تبلیغ و واض و نصیحت مشارکت نداشته باشه بدانید که این انسان در پرتگاه جهنم دارد میرود هلاک میشود نفس و شیطان انسان را به فرتگاه هلاکت می برد. لذا خداوند زلجلال جلال که ویعلمهم الکتاب والحکمه این پیانبر به شما قرآن و حکمت را به شما تعالیم می دهد دستورات خداوندی را برای شما بیان می کند. حلال و حرام را برای شما ترسیم می کند و بیان می کند. لذا اتباع بکنید. قل ان كنتم تحبون الله، پاتبعوني يحبكم الله. اگر شما دوستدار من خداوند مند زور جلال هستی، اتباع فیامبری مرا بکنید. دستورات ایشان را عمل بکنید. سنت های ایشان را عمل بکنید. تعالیمی که از قرآن به شما گوید بر اون تعالیم عمل بکنید. بر اون دستورات و بر اون اوامر و نواهی ما اتاکوم الرسول فخذوه هر آنچه پیامبر به شما میگوید و به شما توصیه میکند اونها را محکم چنگ بزنید بگیرید اونها را که پلاه شما کامیابی شما رستگاری شما نجات شما در همین که هر آنچه پیامبر به شما بگوید اونها را عمل بکنید ما اتاکوم الرسول بخوزو و ما نهاکم عنه فانتَهُ هر آنچه شما را نهی میکند از آنها خودتان را باز بدارید در اونها حلاکت شماه نابودی شماه به فرزگاه جهنم میروید لذا محبت خدا اینه که انسان محبت رسول خدا صلی الله علیه وسلم را داشته باشد امروز بزرگترین نعمت برای ما انسانها، ازیزان نعمت ایمان و نعمت قرآن و نعمت بیستی آن حضرت صلی الله علیه و و ذات رسول الله صلی الله علیه و است. اگر ما این را نداشته باشیم، ایمان را به معنای واقعی نداشته باشیم عمل به با قرآن را به مانای واقعی نداشته باشیم عمل به با دستورات و سنت رسول الله صلی عليه علیه وسلم را به مانای واقعی عمل نکنیم فقط تظاهر بکنیم، عزیزان با مسلمانی ما مسلمانیم اما چه نفس و شیطان بر ما میگوید ما پابند نفس و شیطانیم اسیر و غلام و برده نفس و شیطانیم هر آنچه چه نفس و شیطان به ما تلقین میکند و وسوسه میکند الکا میکند آن را ما عمل میکنیم. نگاه ما را چشمه های ما را از صراط مستقیم نفس و شیطان به سمت گناه میکشد. ما مرهون هوس های نفس و شیطان قرار داریم امروز وضعیت ما حالت ما همینه که هرانچه نفس و شیطان به ما بگوید ما دنبال اون هوس ها هستیم اما بدانیم عزیزان که نفس و شیطان دشمن ماه. هر موقعی که برای انسان وسوسه شیطانی و خباست شیطانی و گناه و معصیت بر دل انسان خطور کرد فورا استغفار بخواند، فورا توبه بکند فورا استغفار بخواند، استغفر الله ربی من کل زنبین و اتوب بار اله این نفس و شیطانی داره مرا به گناه میکشانه اما تو خودت مرا نجات بده خداوند زلجلال انسانی را که نفس و شیطان او را وادار میکنن بر گناه و معصیتی اما اون شخص مؤمن بگوید که اینی اخاف الله شیطان تو مرا داری به این گناه مبتلا میکنی با ربا خوردن با رشوت خوردن با نگاه بد با عمل بد با غیبت، با دروغ، با مال حرام با سود و کارهای زشت بگه اینی اخاف الله من از خدا می ترسم ای خدا من به تو پناه میآورند. خداوند زلجلال اگر این انسان در این لحظاتی که نفس شیطان او را وسوسه برگناه می کنند و او سرش را چشمهاش را بربگرداند بگرداند به سمت خداوند زلجلال خداوند زلجلال چنان حلاوتی و شیرینی ایمان را در دل او جاگزین می کند که لذت خودش او را احساس می کند انسان در دل خودش خیلی مهمی عزیزان الا ماشاءالله برای بندگان خاص خودش خداوند زلجلال نظر لطف دارد اگر انسان بخواهد خداوند زلجلال انسان را با وسیله تسبیح با وسیله ذکر الله با وسیله استغفار با وسیله لا حول ولا قوت الا بالله کثرت ذکر خود به خود این نفس مطیع را رام می شود هرچه نفس و شیطان بر انسان میگوید انسان خلاف آن کند نفس تو از من می که این گناه را انجام بدن ولی اینی اخاف الله من از خدا میترسم استغفار بکنه خدا من نگاهش میدارد والذین جاهدوا فینا لنهدین هم اگر شما مجاهدت بکنید ریاضه بکنید با تنهایی و خلوت با یاد خدا باشید منو شما خداوند زلجلال کمک میکند ان تنصر الله یا نصركم خداوند به ما نصرت میکند ما را کمک میکند نفس و شیطان و هواها و حوثهای شیطانی را خداوند زلجلال با وسیله استغفار با وسیله توبه با وسیل نمازهای تحجد اشکه شبانگاهی سهرهیزی در جوف لیل، در تنهایی شب در تاریکی شب زمانی که مردم همه در خواب گفلتند این انسان اگر بلند بشود و دست به دعا باشد و نماز تحجد را بخواند و بگوید که ای خدا من از تو میترسم و از گناه های گذشتم پشیمانی اظهار ندامت و پشیمانی بیکنند خطعا هر قطره عشقی که سرازی بیشد از چشم یک مسلمان خداوند مند تمام گناه هانش را میبخشد اما شرطی که این عشق از خشیت خدا باشه از ترس خدا باشه در تنهایی نریایی نر هست اونجا نه سمعه هست نه نشان دادنه به دیگران صرفاً با خدای خودش راز و نیاز میکنه در تنهایی خدا مند جلال. این عشق مسلمان ارزشش از هزارها و میلیاردها خیرات و حسناتی که نیکی هایی که با ریا و سمعه باشند همین یک کتره عشق سرنوش ساز می شود برای انسان اما شرط اینه که این کتره عشق از یاد خدا از ترس خدا باشد گناه را وقتی که ببیند بگه اینی اخاف الله ای خدا من از تو میترسم. ترسم بستر گناه پراهمه زمینه گناه پراهمه مانعی نیست در تاریکی شبه در تنهایی کسی نیست جز ذات پروردگار رب العالمین که او هو معکم اینما کنتم هر کجا که باشی شما با او هست نحن اقرب علیکم من حبل الورید اگر این انسان دست شجا از گناه بردارد جز کسانی که پیامبر میپرماد که سبعتون یظلهم الله تحت ظل عرشه خداوند در زیر سایه عرش ایشان را جا می دهد یوم لا, زل لا در روز محشر هیچ سایه نیست جز سایه عرش الرحمن خدا آماند جلال بر این افتخاری که این بنده انجام داده گناه و ماسیت را انجام نداده خاطر ترس خدا خداوند آماند جلال زیر سایه عرش خودش این را جا می این چه مقام بلنده عزیزان؟ چه جایگاه بزرگ و عظیمی پلاه نجات اخروی از هزارها نعمت های دنیوی گنج کارون را داشته باشید پادشاهی مشرک و مغرب از آن تو باشه پادشاهی باشی که در دنیا چنین پادشاهی بر کسی نباشد اما وقتی که آخرت نیست، دین نیست، ایمان نیست، استغفار نیست، توبه نیست، خشیت خدا نیست، اتباع رسول الله نیست، تلاوت قرآن نیست، این به درد انسان نمیخورد عزیزانم. هر چی داشته باشه هر مال و منالی داشته باشه هر سرمایی داشته باشه هر هستی من تو باشته باشیم وقتی که خدا نباشد هیچی نیست مؤمن واقعی کسی که اذا ذکر الله وجلت،, وجلت قلوبهم وقتی که یاد خدا باشد وقتی که دستورات قرآن بیان بشوند وقتی که توجه به خدا بکند چشمهاش پر از عشق میشوند. عشق از چشمهاش جاری میشه اونجا بداند که ارتباطش با خدا مستقیمه ارتباطش برقرار شده میتواند الان بخواهد هرچی از خداوند جلال. هرچی خواستنی هست بخواهد که خداوند زلجلال عطا میکند اما شرط اینه که با توبه خالص باشه با چشم گریان باشه حتی اگر گریه هم نیاید انعلم تبکوف تبکو فتباکو و او کم کاالله صللاات گریه نمیآد خدا دل‌های ما سیاه اما خودمان را مثل همون کسایی که گریه میکنن عادت اونها را در بیاریم این هم خداابد جل را پسنده. اگر برای من گریه نمی آید، هر هرچی تلاش میکنم چشمه من اشک سرازیر نمی شود جاری نمی شود. پیانبر میفرماید فان لم توقو اگر گریه برای شما نمیآید فتباکو خودتان را شبیه با اون کسانی که گریه میکنند از خشیت خدا این را هم خدا خداوند زالجلال می پسندد از ما قبول میکند امروز ما این دو نعمت بزرگ نعمت ایمان نعمت قرآن و نعمت پیامبر بزرگترین نعمت و هستی ما هستند در دنیای کفر اونها را به باد مسخره میگیرند عزیزان من نسبت به قرآن نسبت به صاحت رسول الله صلی الله علیه وسلم دارند اهانت میکنند اما ما مسلمانیم، اطلاع هم نداریم متوجه هم نیستیم اون جذبه و غیرت ایمانی را هم نداریم که حداقل وقتی که احانت با قرآن ما باشد اهانت بر پیامبر ما باشد اهانت بر مقدسات دین ما باشد اهانت بر ایمان و هستی ما باشد اما ما غافل و بیخبریم نه خودمان ایمان واقعی داریم نه قرآن را تلاوت میکنیم میخانیم. همین همینجوری به ظاهر ما مسلمانیم درست شریفی بخانید جای بسی تاسفه و انزجار نسبت به اون کسانی که به قرآن اهانت میکنند و به رسول الله صلی الله علیه وسلم احانت میکنند شما در روزهای گذشته شاهد این ماجرا بودید که در کشورهای عروفی در کشور سوئد توسط یک کشیش مسیحی و نصرانی قرآن عظیم و شان کلام الهی به آتش کشیده می شود ها؟ اما غیرت مسلمان کجایه؟ کلام ربانی در ملعه عام با شعار آزادی و با شعار نسبت به بزرگترین کتاب آسمانی قرآن در جلو عام قرآن را مینشیند و به آتش میکشد اما مسلمانان هیچ صدایی بلند نمیشود زیزان من ب رسول الله صلی الله عله وسلم توسط هفته نامه فرانسوی نامه شارلی ابدو که قبلا این جسارت را و این خیانت را به ساحت رسول الله صلی علیه و وسلم انجام داده دوباره در همین هفته گذشته هفته گذشته دوباره این احانت را در پشت مجله خبیس و فلید خودش کاریکاتور رسول مکدس اسلام صلی علیه و وسلم را داره می این خبیس ملعون و رئیس جمهور فرانسه میگوید که کشور ما کشور آزادیه ما دنبال آزادی هستیم دموکراسی هستیم هیچ تعرضی به این نمی و دنیای اسلام در حال سکوت مرگبار نسبت به چنین جنایاتی امروز ما از که گلایه بکنیم یا رسول الله علیک یا رسول الله من صلوات الله و تسلیماته و تهیاته و برکاته في كل لحظة ما يماصل فزلك العظيم ويعادل قدرك الفحيم ويجمع لك فزائل جميع أنواع الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا سيد العوالم وسلالة السعادات الأكابر والكرام يا فهر الآباء والأمهات من هوى إلى آمنة ومن آدم إلى عبد الله بن عبد المطلب لزام ما مسلمانان. جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان مسجد جامع شهر بزرگ چابهار و جامع بزرگ چابهار این عمل ننگین این دو, دو تا کار و های اونها را ما از این تریبون محکوم میکنیم ان مرگ بر اون کشورهایی که به ساحت رسول الله صلی الله علیه وسلم احانت میکنند مرگ بر اون کشورهایی که به ساحت قرآن مقدس اهانت میکنند که ما مسلمانها شاهد هستیم اما از چشمهای ما بر بدن ما بر جان ما هیچ پروایی نداریم حد اگر ما با دل خودمان با قلب خودمان دست با دعا باشین پیش قدامان دزل جلال اللهم زلزل اقدامهم بار اله ها این کشورها را اینهایی که نسبت به دین و اسلام و قرآن احانت دارن بار مثل قوم لود اینها را زی و زبر بیکن بار اله رب العالمین و رهبر معظم انقلاب هم این قضیه را محکوم کردند امیدواریم که خداوند ذوالجلال این ارائز ناکس و ناچیز ما را نسبت به صحت قرآن و نسبت به صحت رسول الله صلی الله علیه و از زبان نافاک ما خداوند الزلف از ما بفزیرد روح رسول الله صلی الله عليه وسلم را از ما شاد بکند ما را توفیک اطاعت و فیروی از سنت های رسول الله صلی الله وسلم و محبت به آن حضرت صلی الله عليه وسلم نصیب فرماید و فیروی از قرآن را تلاوت قرآن را خداوند الزلف به ما انداد بفرماید کاش که این مطالب از زبان حضرت شیخ استاد بزرگوار بیان میشد این حکیر با این زبان ابتر و گنگ خودم نتانستم حق مطلب را ادا می کنم بار اله ها ما به تو فناه می بریم خب من ارائزم را به پایان میرسانم. رسانم افده شهریور مناسبت های روزه که کشتار جمعی از مردم و دست ماموران ستمشاهی این روز را گرامی می داریم. آغاز سال تحصیلی, تحصیلی و انذارته جدی مسئولین در رابطه با بهداشت دانش آموزان و نونهالان که شایع در هر کلاس 40 پنجاه نفر یا کم بیش اما قطعا تدبیرهایی کرده و امیدواریم که بیشتر این نزارت باشد پیش آغاز حفظه دفاع مقدس را و آغاز جنگ تحمیلی را هم گرامی می‌داریم صحبت‌هایی که در رابطه با مسائل شهری تقریباً ما گفتیم بیفایده گوش شنوایی نیست ما از این تریبون مشکلات را مشکلات مردم را میگوییم اما متاسفانه که آنهو که دولتی وجود ندارد هیچ کسی توجه به این صحبت ها به درد ها و آلام مردم هیچ کسی توجه نمی کند که انهو که دولت مردان نسبت به این امور بی‌توجه و غافل هستند اتفاق خوبی که در هفته گذشته تقریبا 7 تا نماینده قدر از تهران با تلاش نماینده محترم از حاشیه نشینی شهر شاهباهار بازدید کردند و از آب بهداشت راه آموزش مشکلات سیادان کشاورزان را در تمام منطقه در سی روز اینها را تمام دیدند و در فضای مجازی بازتاب گسرده‌ای داشت امیدواریم که تلاش این برادر عزیز و این تلاش که انجام داده و توسط این نمایندگان عزیز که از شهر تهران بودند و نمایندگان جوان و قدری بودن انشاءالله باشد که نتیجی آید مردم بگردد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته